مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و بازگشتن آن شخص شادمان و مرادیافته و خدای را شکرگویان و سجده کنان و حیران در غرایب اشارات حق و ظهور تعویلات آن در وجهی که هیچ عقل و فهم بدانجا نرسد. بازگشت از مصر تا بغداد او، ساجد و راکع سناگر شکر گو. جمله ره حیران و مست او زین عجب، زنعکاس روزی و راه طلب. کس کجا امیدوارم کرده بود، و کجا افشاند بر من سیم و سود؟ این چه حکمت بود که قبله مراد، کردم از خانه برون گمراه و شاد. تا شتابان در زلالت می شدم، هردم از مطلب جداتر می بودم. باز آن عین زلالت را بجود، حق وسیلت کرد اندر رشد و سود، گمرهی را منهج ایمان کند، کجروی را محصد احسان کند، تا نباشد هیچ محسن بی وجا، تا نباشد هیچ خاین بی رجا، اندرون زهر تریاق آن حفی، کرد تا گویند، زلطف خفی نیست مخفی در نماز آن مکرومت در گناه خلعت نهد آن مخفرت منکران را قصد ازلال سقاد زل شده از و ظهور معجزاد قصدشان زنکار زل دین بوده این ظل از رسولان آمده. گرنه انکار آمدی از هر بده، معجزه و برهان چرا نازل شده؟ خسم منکر تا نشد مصداق خواه، کی کند قاضی تقاضای گواه؟ معجزه همچون گواه آمد زکی بهر صدق مدعی در بیشکی تن چون می آمد از هر ناشناخت معجزه میداد داد حق و می مینواخت مکر آن فرعون سیصد تو بده جمله او و قمع او شده ساهران آورده حاضر نیک و بعد، تا که جرح موجزه موسا کند، تا اصارا باطل و رسوا کند، اعتبارش را ز دلها برکند. عین آن مکر آیت موسا شود، اعتبار آن آسا بالا رود، لشکر آرد او پگه تا حول نیل، تا زند بر موسی و قومش سبیل، ایمنی امت موسا شود، او به تحت الارز و حامون در رود. گر به مصر اندر بودی او و هم از سبتی کجا زائل شدی؟ آمد و در سپت افگند او گداز که بدان که امن در خوف است راز آن بود لطف خفی کورا سمد نار بنماید خود آن نوره بود نیست مخفی مزد دادن در تقا ساهران را عجبین بین بعد از خطا. نیست مخفی وصل اندر پرورش. ساهران را وصل داد او در برش. نیست مخفی سیر با پای روا. ساهران را سیر بین در قطع پا. آرفان، زانند دایم آمنون که گذر کردند از دریای خون امنشان از عین خوف آمد پدید لاجرم باشند هردم در مزید امن دیدی گشته در خوف خفی خوف بین هم در امید ای صفی. آن امیر از مکر بر عیسی تند عیسی اندر خانه رو پنهان کند اندر آید تا شود او تاجدار خود ز شبه ایسی آید تاجدار هی میاویزید من عیسی نیم من امیرم بر جهودان خوشپایم زودترش بردار آویزید کو ایسی است از دست ما تخلیت جو چند لشکر می رود تا برخورد برگ او فی گردد و بر سر خورد چند بازرگان رود بر بوی سود اید پندارد بسوزد همچعود چند در عالم بود برعکس این زهر پندارد بود آن انگبین بس په بنهاده دل بر مرگ خیش روشنی ها و زفر آید بپیش ابراه با پیل بحر زل بیت آمده تا افگند هی را چومیت تا حریم کعبه را ویران کند جمله را آنجای سرگردان کند تا همه زوار گرد او تنند کعبه او را همه قبله کنند و از عرب کی نه کشد اندرگزند که چرا در کعبه ام آتش زنند؟ این سای اش ازت کعبه شده، موجب ایزاز آن بیت آمده. مکییان را از یکی بود سد شده، تا قیامت عزشان ممتد شده. او و کعبه او شده مخصوفتر، از چی است این؟ از انایات قدر، از جهاز ابرهی همچون دده، آن فقیران عرب منعم شده. او گمان برده که لشکر می کشید، بحر اهل بیت او زر می کشید. اندر این فسخ ازایم، وین همم، در تماشا بود در ره هر قدم خانه آمد گنج را و باز یافت کارش از لطف خدایی ساز یافت مکرر کردن برادران پند دادن بزرگین را و تا بنا آوردن او پند را و در رمیدن او از ایشان شهیده و به خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن، به دستوری خواستن، لیک از فرد اشق و محبت، نه از گستاخی و لاعبالی، الا آخره. آن دو گفتندش که اندر جان ما هست پاسخ ها چو نجم اندر سما گر نگویم آن نیاید راست نرد ور بگویم آن دلت آید درد همچو چغز من دراب آب از گفت علم و از خموشی اختناق است و سقم گر نگویم آشتی را نور نیست ور بگوی سخن دستور نیست. در زمان برج است کی خیشان ودا اننمد دنیا و مافی ها متا. پس بر اون او چتیری از کمان که مجال گفت کم بود آن زمان. اندر آمد مست پیش شاه چین، زود مستانه ببوسیدو زمین، شاه را مکشوف یک یک حالشان، اول و آخر غم و زلزالشان. میش مشغول است در مرعای خیش، لیک چوپان واقف است، از حال میش کلکم را بداند از رمه کی علفخار است و کی در ملحمه گرچه در صورت از آن صف دور بود لیک چون دف در میان سور بود واقف از سوز و لهیب آن وفود مصلحت آن بود که آورده بود در میان جانشان بود آن سمی لیک قاصد کرده خود را اعجمی صورت آتش بود پایان دیگ معنی آتش بود در جان دیگ صورتش بیرون و معنیش اندرون معنی معشوق جان در رگ چخون شاهزاده پیش شه زانو زده ده معرف شاره حالش شده گرچه شه آرف بود از کل پیش پیش لیک می کردی معرف کار خیش در درون یک ذره نور عارفی به بود از صد معرف ای سفی. گوش را رهن معرف داشتن آیت محجوبی است و حرز و زن. آنکه او را چشم دل شد دیده دید خواهد چشم او اینل ایان. با تواتر نیست قانه جان او. بلز چشم دل رسد ای قان او. پس معرف پیش شاه منتجب در بیان حال او بگشود لب. گفت شاه صید احسان تو است پادشاهی کن که بی بیرون شب است. دست در فترا که این دولت زده است بر سر سرمست او برمال دست گفت شه هر منصبی و ملکتی که هست یا بعد این فتی. بیست چندان ملک کوشد زان بری بخشمش اینجا و ما خود برسری گفت تا شاهید در وی عشق کاشت جز هوای تو هوایی کی گذاشت بندگی توش چنان در خورد شد که شهین در دل او سرد شد شاهی و شهزادگی در باخت است. از پی تو در غریبی ساخته است. صوفی است. انداخت خرقه وجد در. کی رود او بر سر خرقه دگر. مال سوی خرقه داده و ندم، آن چنان باشد که من مغبون شدم. بازده آن خرقه این سو ای قرین که نمی ارزید آن یعنی بدین. دور از آشق که این فکر آیدش ور بیاید خاک بر سر بایدش. عشق ارزد صد چو خرقه کال بد که حیات دارد و حس و خرد خاص خرقه ملک دنیا کبتر است پنج دانگ مستیش درد سر است ملک دنیا تن پرستان را حلال ما غلام ملک عشق بیزوال عامل عشق است معذولش مکن جز به عشق خیش مشغولش مکن منصب کانم زرویت محجبه است عین و نامش منصب است موجب تأخیر اینجا آمدن فقد استعداد بودو ضعف فن بیز استعداد در کان روی بر یکی حبه نگردی محتوی همچو انینی که بکر را خرد گرچه سیمین بر بود کهی بر خورد. چون چراغ بیز زید و بی فتیل نه کثیر استش ز او نه قلیل در گلستان اندر آید اخشمی کی شود مغزش ز ریحان خورمی همچو خوب دلبر مهمان غر بانگ چنگ و بربت در پیش کر همچو مرغ خاک کاید در بهار زان چه یابد جز حلاک و جز خسار همچو بیگندم شده در آسیا جز سپیدی ریش و مو نبود اتا آسیای چرخ بر بیگندمان مو سپیدی بخشد و ضعف میان لیک با با گندمان این آسیا، مالک بخش آمد، دهد کار و کیا. اول استعداد جنت بایدد، تاز جنت زندگانی زایدد. تفل را از شراب و از کباب، چه حلاوت و از قصور و از قباب؟ حد ندارد این مسل، کم جو سخن تو برو تحصیل استعداد کن. بهر استعداد تا اکنون نشست، شوق از حد رفت و آن نامد به دست. گفت استعداد هم از رسد بیز جان کی مستعد گردد جسد. لطفهای های شه غمش را در نوشت. شد که سید شه کند او سید گشت. هر که در اشکار چونتو سید شد، سید را ناکرد قید او قید شد. هر که جویای امیری شد یقین پیش از آن او در اسیری شد رهین عکس میدان نقش دیباچه جهان نام هر بنده جهان خاجه جهان ای تن کج فکرت معکوس رو صد هزار آزاد را کرده گرو مدت بگذار این حیلت پزی چند دم پیش از عجل آزاد زی وردر آزادید چون خر راه نیست همچو دلوت سیر جز چاه نیست مدت رو ترک جان من بگو، رو حریف دیگر جز من بجو، نوبت من شد، مرا آزاد کن، دیگری را غیر من داماد کن. ای تن صدکاره، ترک من بگو، عمر من بردی، کس دیگر بجو، نفتون شدن قاضی بر زن جوهی و در صندوق ماندن و نایب قاضی صندوق را خریدن. باز سال دوم آمدن زن جوهی بر امید بازی پارینه و گفتن قاضی که مرا آزاد کن و کس دیگر را بجوی. الا آخر القصه جوهی هر سال ز درویشی بفن رو بزن کردی که ای دلخواه زن چون صلاحت هست رو سیده بگیر تا بدوشانیم از سید تو شیر قوس ابرو تیر غمزه دام کید بهره چی دادت خدا از بحر سید راو پی مرغ شگرف دام نه دانه ما لیک در خوردش مده کام بین ما با کنورا تلخ کام کی خورد دانه چو شد در حبس دام شد زن او نزد قاضی در گله که مرا افغان ز شوی ده دله قصه کوته کن که قاضی شد شکار از مقال و از جمال آنگار. آن نگار گفت اندر محکمه است این غلغله من نتانم فهم کردن این گله گر به خلوت آیی ای سر و سهی از ستمکاری شو شرحم دهی گفت خانه تو زهر نیک و بده باشد از بحر گله آمد شده. خانه سر جمله پر سودا بود. صدر پر وسواس و پر غوغا بود. باقی ز فکر آسودند، وان صدور از صادران فرسودند. در خزان و باد خوف حق گریز، آن شقایق های پارین را بریز. این شقایق منع نو هاست، که درخت دل، برای آن نماست خیش را در خواب کنزین افتکار سر ز زیر خواب در یقزت برار همچون اصحاب کهف ای خاج زود رو به ای قازن که تحسب هم رقود گفت قاضی ایسنم معمول چیست گفت خانه این کنیزک است. خسم در ده رفت و حارس نیز نیست بهره خلوت سخت نیکو مسکن است امشب ار امکان بود آنجا بیا کار شب بی سمعه است و بی ریا جمله جاسوسان ز خمر خواب مست زنگی شب جمله را گردن زده است خاند برقاضی فسونهای عجب آن شکرلب وانگهانی از چه لب چند با آدم بلیس افسانه کرد چون هوا گفتش بخور، آنگاه خرد. اولین خون در جهان ظلم و داد، از کف قبیل بحر زن فتاد. نوح چون بر تابه بریان ساختی، واهلا بر تابه سنگ انداختی. مکر بر کار او چیره شده، آب صاف وعز او تیره شده، قام را پیغام کردی از نهان که نگه دارید دین زین گمرهان،